بسم الله الرحمن الرحیم و به یاری و ان هو خیر المناصر المین صلی الله علی سیدنا محمد و آله و یاری الله ما شاء الله ما هفته گذشته درسمون در ارتباط با بررسی جایگاه حدیث در علم فقه بود که در این زمینه نسبتاً مفصل صحبت کردم ملکها بیشتر در ارتباط با شیعیان و جایگاه حدیث در فقه شیعی براتون صحبت کردم البته همون هفته گذشتم که در ارتباط با جایگاه حدیث در فقه شیعی بیشتر توضیح دادم کلام من ناظر بر محدثان متقدم شیدی بود یعنی ما تا پایان قرن پنجم رو هرچی مثال زدیم تا پایان قرن پنجم مثال زدیم و دیگه در ارتباط با دوره متاخران صحبتی نداشتم تا زمان ما حاصل. امروز اولا یه تکمله ای زنم نسبت به سخنان هفتهی گذشته که یه نگاهی هم میکنیم به دوران متأخر متاخران باز شیعه بعد که این تکمله رو در چند دقیقه براتون توضیح دادم همین بحث رو نسبت به اهل سنت ارائه خواهم داد که بحث جلسه گذاشتم کامل بشه. اون وقت اگر فرصت کردیم یک بحث کاملا جدیدی را هم براتون آغاز خواهم کرد خب آنجا که من ارز کنم خدمتتون میخوام امروز عنوان بکنم به عنوان تکمیل مباحث هفته گذشته جایگاه حدیث در فقه شیعه در دوره متأخران، در دوره متاخران ما معمولا در علوم اسلامی از قرن ششم به بعد رو میگیم دوره متاخران و عرض کنم خدمتون تا دوران معاصر نزدیک به دوران معاصر میگیم دوره متاخران برای این منظور به نظر اگر ما تو سیر تحول فقه شیر این در دوره این را اگر می خواهیم دیدیم یک مختصر این راجعه در دوره متاختران بگیم گرم های شیش تا در طبعا یک بخصی داره یک داره های یازده و دمازده یک وضعیتی داره فرح های تقریبا سیزده تا 15 تا اینا یه فعالیت دیگه دارم نمیخوام خیلی مفصل اه راهبولات شیعه رو بگم من نگاه اجمالی بگم. در این نگاه اجمالی فرق 6 تا در حقیقت فرق هستند یک ایمه. استنباطیه با مهدلیت عرادیس فقیه و مثلا اصول مرامانی علم فقر در شیعه یک علم استنباطیه و وقتی فقر استنباطی باشه برقایی کتاب و سنت به طور کنید کتابی طور مردان بزرگی ظاهر شدند که فکر رو با این مسیر پیش بردن مثلا فرض فرمای علایی الهدیه کتابی برای به نام صدران مسائل افهام محققه علمی کتابی دارند به نام شواهد اسلام عشابت شهید اول کتابی داره به نام العلومه شهید ثانیه کتابی در نام شعر اول نوشته فقهای دیگرم هستن ولی معروف ترین فقهای اسلامی در فاصله قرای شیش تا ده این مردان هستن این دیوانه ودی شهید اول شهید ثانی که کتاباشون هم براتون نوشتم که این دوره فقه یک علم استنباطیه یعنی در واقع به تبع اون سنت فقهی شیخ طوسی ایوتون باشه هفته پیش رو گفتم گفتم در دوران شیخ توسی فقه شد یک علم استنباطی و ایشون یک کتابی نوشت به نام المقدود فی فقه الامامیه که رساله مسائل فقه را استنباطی کرد و این مسیدی که شیخ گوزی در برن با واقع کارگذاره می‌کنه به عنوان فقه استنباطی که البته حدیث یه آنکنه بیه یه رو ما داری جایگاهی حدیث رو در علم فقه بررسی می‌کنیم خب در فقه استنباطی فقه مبتنی است بعد کتا بسندن بعد از کتا بسندن یه خلاقیت فقیره یعنی خلاقیت فقیر باید بگی که این مسئلهی که به اومده این میتونه یک مصداقی از این آیه باشه یک مصداقی از این حدیث باشه این که خلاقیت های فرقیه خب بعد این مکتب فقه استعباطی شیخ دوسی ادامه پیدا بکنه تا میرسه به تا پایان قرن دامان ما فقه هایی داریم که یا واقعیم فقه استعباطی توسعه توصیح توسعه توصیح دادن این هم قدارهای ایناست بعد ما می‌رسیم به قرنهای یازده و دوازده در یازده و دوازده یک اتفاقی که این اتفاق رو ما تو تاریخ حدیثم گفتیم اینجا برای شما یک جریانی ظاهر می‌شه به نام اخباریگری ظهور جریان اخباریگری یه جریان در شیعه متقدد میشه و ظاهر میشه به نام اخبادیگری که مؤسس شخصی بوده به نام ملا محمد امین استرابادی ملا محمد امین استرابادی ایشون کتابی می به نام الفباه دول در کتاب الفباه دول در قطع سعی میکنه که طریق فقیهی مجتهدان رو اپتال بود. که در اون زمان به مجتهدان می‌گفتن اصولیون یعنی در نقطه مقابل اخبارگری اصولیگریه اصولیگری یعنی اون مکتلی که در برابر اصل اخباریون تو شیعه وجود داره بهشم یعنی خب اینجا الان برقایه این مکتب رو ولی یک جبیه هم به نام اخباریگری متوضع میشه اخباریون سعی کردن که دید دانشمندان رو برگرمونم به حدیث و دردقیقت اجتهاد و استنباط رو غیر متوضعه حالا یا یک چیزی شنگه بودند یک چیزی شنگه بودند از امام صادق از امام باقی شنگه بودند که بعضی از مقاها با رعی و قیاس فتحا بودند از آنجا که در شیعه قیاس باطله و استفاده از رعی هم باطله اینا تمام کارهای مجتریلی رو تمام استعبارهای فکری و کارای مشائخ رو تفسیر کردن برای ریاض یعنی گفتن اینا فتواهاشون بر پایه‌ی رای ریاضسه رای اونها سم که مسائل شیعه بوده پس اصلا تریقه مجتهدین بوده اصلا کار مجتهدین از زیر بنایش بوده حالا بگذاریم که اصلا استدلال‌های کلامی افغانی چرا درست چرا غلط قلتی حلقش بیشتر از درستشه برای همینم بعد از دو قرب بر افتاد یعنی اخوادیگری نه ترست به حیات خودش بدانی بده تونانی مدت بعد از دو قرب بر افتاد و اما اون دو قربی که اینها بودن سعی کردن جریان رو برگردارن به قبل یک جرهان فرق رو برگردان بوده قبل از شیخ توسی قبل از شیخ توسی فقه محصول بوده فقه روادی بوده قبل از شیخ توسی یعنی در زمان شیخ سبور یعنی در زمان شیخ کلیمی اخباه تلاش کردند کردن که جرهان رو برگردان دور بوده بر کتاب‌های بزرگی بر این پایده بشتن. مثلا، به, به نظر ما کتاب وصاقه و شیعه وصاقه شیعه کتاب وصاقه و شیعه مال شیخ و بار این کتاب وصاقه و شیعه مال شیخ و بار را می‌دونیم از نظر من چه قدیده که؟ از نظر من بست یافته ملای احضر و فقیر شیخ صدو بست یافته بست که و یعنی شش صدوق آمده شش هزار روایت فقیر جوابی و واقعا هم قسمت به من رویلا و یعنی این کتاب یک فقیری رو میکنه برای یک که فقیری در دست ازش نیست حالا این تا تو وساقیل شده تا ۶ درابر شده قسمت به قسمت تفصیل و وسائل شیعه خدمت و الى تحصیل تحصیل یعنی به مسائل و شرقه. مسائل و شریعت بعد فکر مکنی که مثلا شیخ برامی در ذهب نبال یا فتوه ی فکی میداره یا بیان فکی میداره نه نفس حکیث رو نهارید کن یعنی اینگار که ایشون تک تک احادیس اعلمه بدش یه فتوه نیست یک فتوه تو دنبال مساعد شریعتی شعر شعر مساعد شرعی هستی میخوی مساعد شرعی رو تقصیر کنید تحصیل از اسمش رو دقت کنیم تفصیل و وسائل شیعه مسائل شیعه یعنی مدارک شیعه برای چی؟ الا تحصیل، مسائل شریعت برای چونیم مسائل شریعت رو تحصیل کنیم به دست بیاریم این در واقع میشه گفت که کاری که شیخ صدوق دو خرم جارو میکنه در یک اثرت مختصر، درام ملایت رو قبلی، این برس و طوصه اش در برم نیاز همون میشه مسائلشیه. همین کتاب مسائلشیه تازه بعداً مستدرک برمیزده به وسیله محدث نومی که مستدرک و مسائل و بطور مسائل تو این دوره ای که از ما نمیشون قربانی دازده و دازده همون و زمانی دریان اخباری یه دیرونه و شما میگیم اجتهاد و استنباق فقه یه چیزی در حد حرمت شهری بوده حرام بوده یعنی اگر مثلا اخباریون روشون میشد که یک فقیهی رو که قائل به استنباق بوده اجتهاد بوده تکفیر بکنن و از دین اون رو خارج بکنن رو دروازی نداشتن تکفیر میکردم فقیه رو به خاطر فتوهی که میداد استنبادی که میگرد تکفیر میکردم چنان که آبا خواهم گفت خواهم گفت اخباریون همین برخورد رو با پدیده تفسیرم دردن یعنی در دوره اخباریون تفسیر اجتهادی معنا معنی نداشته تفسیر با کمک علوم گناه و غم این هم نداشته اگر کسی میخواست قرآن رو تفسیر بکنه باید تفسیر روایی میکرد تفسیر روائی این برخورد را اینا با علم کلام هم کردن یعنی با تمام رشته هایی که از کنم حدیث توش یکی متخلیتی داره اینا ترجیح دادن که فقط احادیث بربوطه به اون موضوع جمع وری کنن. دستمندی بکنن و به تصورشون این بود که ما به قدری روایت در اختیار داریم در تمام شعبه های یا در شما تمام مثلا شعبه های تفسیری که دیگه نیازی نیست که با کمک عقل ما استنباط کنیم و بخواییم فتوای فقیری بود خب این فیض کاشانی هم یک اخباریه و مثلا بعد از فیز کاشانی و شیخوهر را آمدهی که اینا جز اخباریون قرن یازده هم در قرن دوازده هم هم ما اخباریونی داریم بعضی از اخباریون متدلن مثل مثلا شیخ یوسف بهرانی صاحب کتابی بوده به نام الحدائق و و بعضی از اخباریون خیلی متعصبن یک شخصی بود به نام شیخ عبدالله سماهیجی در سامر را زندگی میکرد جز اخباریون متعصب بود و اینقدر ایشون افراد کرده در اخباریگری و تعصب ورزیده که آخیبند دسته از علما گرچه ها مثلا در شیعه خیلی رسم نبوده که مثلا کسی کسی رو به خاطر عقیدش تکفیر کنه ولی چون ایشون دیگه ضررش بیشتر از نفعش شده زدن و رشتن و کشتندش یعنی ما حتی در تاریخ اخباریون اخباریونی داریم که دیگه کشته شدن به مرگ طبیعی از دنیا نرفتن چون کافی بود مثلا این مخالفان خودش رو متهم بکنه به کفر و شرک و نفاق و از از این حرفا هم بعد از دو قرن اخباریگری بر افتاده حالا چرا اخباریگری بر افتاد برای که اخباریگری مبتنی بر یک رشته تناقضات درونی بوده تناقضات درونی ببینید هیچ چیز یک فکری را از بین نمی نمیبره دانشجویان. مگر زمانی که گرفتار تناقض میشه. مثلا اگر که ما در روایات امام باقر و امام صادق روایاتی داشته باشیم در تمجید عقل در دفاع از عقل و تمجید عقل و بزرگداشت داشت عقل این همون جایی بود که اخباریون زمین خوردن برای اینکه جناه رقید که اصولی باشه اصولیون باشن اینا به استناد روایات امام باقر و امام صادق راجب عقل و ارزش عقل و تدبر و اجتهاب با اخباریون بحث میکردن اخباریون نمیتوانستن به پذیرن نمیتوانستن روایاتو نفی کنند. چرا؟ چون این روایات در کتاب کافی کلینی بود خب کتاب کافی کلینی یکی از چهار کتاب معتبره اینجا بود که اخباری اون زمین خوردند یعنی در واقع اندیشه مبتنی بر یک تناقض بود از طرف عقل و قبول نداشتم از طرف روایات وارد در تنجید اقل رو نمی کنستم تکذیب کنم چون بناشون این بود که بگن اخبار کتب عربع قطعیه خیلی خوب اگر کسی بگه اخبار کتب عربع قطعیه میان با روایاتی که در کتب اربعه هست استناب میکنن دیگه برای همینم اخبادگری بعد از دو هم برفتاد در شیعه وقتی که اخبادگری برفتاد اخ اون کسی که پشت اخبادگری رو در شیعه به خاک بادی در مناظرات علمی فردی بود به نام علام وحید بهبانی علام وحید بهبانی علامه وحید بهقاهانی استاد شخصی که تو شیعه باشی یعنی شیخ اعظم یعنی شیخ مرتضی انصاری شیخ مرتضی انصاری دو تا کتاب داره یکی به نام رسائل یکی هم اسمم خدمتون مکاسه مکاسه در فقه رسائل در علم اصول فقه از زمانی که شیخ مرتضی انصاری ظاهر شد با نوشتن کتاب‌های مکاسب و رسائل تا به امروز دیگه آن خط آلب در مذهل شیعه خط اصولیه اصولی یعنی همین اجتهاد یعنی همین که مثلا مشتهیدین قوم، نجف، مشهد مراجع از توش در میاد که حاصل کارشون هم رساله‌های عملیه‌ای که برای مردم می‌دهیسن خب این رساله‌های عملیه فتواست دیگه البته این فترها برخواسته از قرآن و حدیث یا کتاب و سنت یعنی <تصفيق> ما رواز برگردیم به حرفی که هفته گذشته داشتیم براتون و اون که حدیث یا عین فقه در یه گوراهایی یا یکی از منابع و مستندات وقتی میگیم یکی میگی از منابع و مستنان ده فقه باید در کنار مثلا قرآن میشه در کنار عقل میشه ممکنی در یک شروعی در کنار اجماع بشه بنابراین آنچه که مربوط به فقه شیعیه فیلن جمعندی ما اینه که در فقه شیعه با تمام فراز و هایی که ما در طول فقه داریم چه در دوره متقدمیم چه در دوره متأخرین تا دوران معاصر جنبدی این میشه که در بعضی از دورها ها حدیث فقه و فقه ماهیتی غیر از حدیث ندارد اما در یک دوره دیگر حدیث یکی از منابع فقه شایدم بخوام مقایسه بکنیم بزرگترین منبع فقه حالا در کنار الوکه این منبع از قرآن هم استفاده میشه از عقلم استفاده میشه و تعریفی از اجماع هم استفاده میشه ولی به هر حال مهمترین منبع علم فقه عبارت از رقایاته من این را هم اضافه بکنم که در دوران معاصر آیت الله بروجردی شیخ شونم یکی از بزرگترین فقهای معاصر شیعه هستند کتابی می به نام جامعه و احادیث شیعه این کتاب جامعه احادیس شیعه ای که آیت الله بوروجی نوشته به یک معنا به یک معنا ناسخه کتاب وسایل شیعه حسبت شیخ و یعنی به عبارتی یه بعد از کتاب جامعه و احادیث شیعه فقه ها خیلی سراغ کتاب وسائل شیعه نمیرند آقای بروجردی در کتاب جامعه و احادیث شیعه معتقده که یک فقیه برای اینکه بتونه بهترین رو بده نه تنها حدیث شیعی بلکه باید تسلطی بر حدیث سنی هم داشته باش. یعنی ایشون در دوران معاصر ذهن خوقه ها رو متوجه ای این معنا میکنه که شما غیر از روایات فقهی که در کتاب های حدیثی شیعه استفاده می کنید باید یه سری هم به کتاب های حدیثی اهل سنت مثلا سیر بخاری، سیر مسلم، فرض کنید مبتع مالک سنن عربعه ببینید این مسئله که شما میخوایید یه مسئله فقهی که میخوایید حالا یه فتوایی برادران اهل سنت ما چه دست روایاتی دارن؟ یعنی اینشون تقریبا یک شخص تقریبی بودن تفکرشون یک تفکر تقریبی بوده که علاوه بر روایات شیعی برید روایات سننی رو هم ببینید اینجور که مثلا علمای شیعه یه خطی دور خودشون کشیده ماشن و خارج از خودشون هیچی رو نبینن از جمله منابع حدیثی اهل سنت رو این تقریبا این دید رو به شایدهاشون دادن و از زمان آقای برو به بعد فخه های شیعه در فتاوایی که میخوان بدن سعی میکنن حتی موقعیت مسئله رو در روایت اهل سنتم ببینن ببینن که به چشه این وارد شده این در حقیقت من با این جنبندی مخصن نگاهی که آیت الله بروجردی دارن ما از این بست در حوزه شیعه خارج میشیم اما در حوزه اهل سنت در روزه اهل سنت چنان که ملاحظات تاریخی ما نشون میده را خدمتون جارگاه حدیث در فقه احل سرمت این رو دخواییم یه دونست مختصری و میدونیم که در اهل سرمت چهار مذهب رسمی مادمی که این چهار مذهب رسمی رو اگر را خواهیم بر اساس دوره های تاریخی یعنی دوره های تاریخی که ظاهر شدن برای شما بگیستیم قدیمی طریب اینها مذهب مالکیه و هم همعصر با مذهب مالکی مذهب هنفیه هنفیه مصورت برای ماشید نه؟ آنه خب بیایید، آنه این ماشید شما بعد از ما رسیدیم به مذهب شافعی و متأخرترین به مذهب مذهب همدید. برای که شافعی متوافق است سوره یعنی از قرن 6 از قرن و مثلا هم احمد احلاد نمبر کاملا در اما این دوتا این دوتا باید دو اند، دو و شاید ابو هم زودتر از مالی که از دنیا رفته یعنی شاید مثلا چه کنون اگر اگر اینا رو و تاروش اگر بخوانیم تنظیم بکنیم این اول بشه مالک دوم بشه این سوم بشه قطعا این چهارم بشه قطعا بله شفیج دیگه سوستش ایشون ساده هفته دو نوره فکر میکنم ابو هنیفه ساده فوت این یکی احمد نه همود که 241 فور کرد اینا به این ترتیب دو تا جون قرم دومن دوتا جون قرم سه دومن فقه رسمی اهل سنه ارتباطی با قرن اول ندارد فقه رسمی ها اینا ما میگه فقه رسمی معنیش نیه که مثلا در قرن اول خود اینا دارند برای خودشون فقهشون هم یه اناسوری داره ولی حال جنبه رسمی، شکل گرفته‌ی مذهلی نیست. مذاهد فقهی عهد سنت، متعلق به قرآن دوم دو و سوم هستن. ما در گرن چهارم هم مذهل فقهی داریم برای عهد سنت، ولی دیگه دو تاریخ نمونده یعنی منقرز شده، مثلا فرض می‌خرمونیم داوید ظاهری، یکی از فقهای اواخر قرن و قرن 4 م مذهبش تا زمان ما باقی نمونده. یا همین تبری، تبری صاحب تفسیر صاحب تاریخ مذهبی داشته، معروف بوده به ولی نمونده. اما این چهار تا به دلیبی که شخصیت‌هاشون برجسته‌تر بودن، بزرگ‌تر بودن، از بین مذاهب گوناگون حفظ شدند و تا زمان ما هم باقی اگر که ما بخوایم این چهارت ها رو از نظر مبانی مبانی فکری دست بندی کنیم از مذهب حنفی و مذهب شافعی که یک حوزه قرار میره مذهب مالکی مذهب همونی در هیچ حوضه دیگری برای از حیث مبانی شد به این دو مذهب رعی و اجتهاد گراه است حالا با درجاتی این دو مذهب نقل و حدیث گراه است یعنی خود احل سنتم نسوشیره <تصفيق> چنانچه مثلا در شیعه ما در یه گروه گفتیم اصولیون، اخباریون در احل سنتم چنین دستوبرده‌های وجود داره یعنی بعضی از مظاهب فقیشون یه مقدار رعی و اجتهاد گیرا و قیاس به انوانه یکی از افزارهای اجتماع تو قسطور فقه‌شون یک جایگاه بزرگ داره اما دوتا مذهب مالکی و همبلی ایران نقل و حدیث هستن و از قیاس در شرایط ازترادی استفاده می‌کنن یعنی هر چهار مذهب اهل سنت قیاس رو قبول دارن بینوان یک مدل بینوان یک اپسار برای استنباط روکی به خدا، حکم شرعی اما بعضی از مذاهب از استفاده ی وافر می کنن کنی برای استفاده از رای و قیاس و بعضی از مذاهب استفاده حد اغلی می مثل دو مذاهب این پانیکی هم برد. خب، من تو تار خدیز هم نوشتم بعضی از شما که تاریخ حدیسی منو دید یا با من وارد تاریخ حدیس رو پاس کردید من تو تاریخ حدیسم برای شما نوشتم این رو رو گفتم در قرم دوم در قرم دوم بجیری جامعه اسلامی دو تا پایگاه مو داره یک پایگاه مدینه در حجاز دو پایگاه کوفه و بردار در عراق قاهر دوم هجری مدینه که حجازه اینا سنت‌گرا و نقل‌نگرا و به مدینه می‌گفتن دار و سنه بود دار و این هر کسی دنبال سنت پیغمبره بسم الله یاد دو مدینه مدینه دار و سنه خب؟ علمایی که در مدینه زندگی می‌کردن یا برای آمودفن قروم دینی به مدینه سبر می‌کردن اینا بودت این شانس رو باشن که سنت پیغمبر بود با استفاده از نقل دریافت اما پایگاه کوفه و بغداد این در واقع فقه محتمی بر رعی و قیاس بوده. خب؟ بزرگانی مثل مالک ابن انست، در مدینه بودن. بزرگانی مثل عبو حمیفه، سفیان سعولی، از کنم، رایی و رعه اصلا یک آقایی بوده تو بر می‌کنه وم ملقب بوده بر ردیعت و رعه انگار که این آقا غیر از رعه غیر از استنباط شخصی هیچ وسیله‌ای برای فتما نداشته باشه به این آقایی گفتم ردیعت و رعه چون با استفاده از رع و پیاس فتمای بده مثلا فرس کنید یک مفسر فقیده یه بار امام باقر علی اسلام میگه که بلدن اندکه تو فصل و تفسیر میگه یه می امام می من نصیحت میخوام به تو تو؟ برمبنای رای خودت فقط کنم بیدی، حلک در وقت نفتی زیادی اگر واقعا بر اساس رعی، همش بر اساس رعی اگرم بر اساس آراه، مثلا مفسران قبل است کنید، باز داره قرآن تفسیر می‌کنید، بازم هم حلک در حقیقت امام می‌خواند ذهنشون رو متوجه بکنند که تفسیر قرآن با علم فقر نیمونداشه باید پرمایدان یک برماییت باشه این موردات که با از باشه نه برمایی رایی نسیعتش که جریان جریان احلی سنده این تصمیری که من برای شما ترسیل کردم از قرن دوم و این واقعیت مذاهامل اهل سنده موند چه از بین مذهب مالکی و مذهب همبری؟ مذهب همبری درجه ی حدیث گرایش هست هره و تلقیش از حدیث متفاوته با تلقی مذهب مالکی چون حالا همه این مذهب فرقشون برکایی نقل و حدیثه خب تفاوت شده تفاوت شده تفاوت مذهل مالکی و مذهل همولی دهجه حدیث و تدقیه از حدیثه الان من کتاب مبتع مالک رو آوردم سر کلاس این کتاب رو شما نگاه بکنید که حالا نوشتن خود این کتاب هایی تا داستانی داره یه تاریخه یعنی یه داستانی داره میگن که منصور عباسی منصور ایشون خب تایی تختش بردار کنه دیگه بردار کنه دیگه بغداد را ایشون به وجود آورده دیگه قبل از اون پایگاه علمی سیاسی تا قبل از ایجاد بردار تو کوفه بود. حتی که ایشون اولین خلیفه عباسی هم مسندش تو کوفه بوده و قبل تو کوفه بوده. منصور عباسی اومد شهر بغداد رو به وجود آورد، شد پایدار عباسیان. از بغداد اومده مدینه خدمت مالک بن گفته که ان الناس قد اختلفوا فی الاراء. مردم در سعوزمین عراق مشهار اختلاف هست مشهار اختلاف هم. این اختلاف یعنی اختلاف علما برپایی رعی و قیاس وقتی میگه امن الناس قد اختلافون فلعراق منظورش از ناس فقه هستند دانشمندان هستند دانشمندان در عراق یرفتار اختلاف هستند قد اختلاف یعنی اختلافات فقهیدی چه اختلافات فقری، برای که هر بر برمانگاه رن، رجم خودش فتحایی داده، برمانگاه قیاسا برای خودش فتحایی داده، خب این اختلاف فتحایی به اختلافات مخندتی نمکشیده شده. برای اون که کتابا نجمه آمون یک کتاب بنویز، ما محبوب رو برای کتاب مختلف یک خلیفه بغدادی متوسل می‌شود به یک آنم مدنی حاله مدنی مالک مبتع در این کتاب خب حدیث در موع مالک فقه مالک مبتنی بر حدیث یعنی حدیث در موطئه ما له چه ماهیتی دارد حدیث در موطئه ما له چه ماهیتی دارد خب یک احادیث نبعی احادیث نبعی احادیث نبعی در موطئه یا به شکل مرسل مثلا قال رسول الله فعل رسول الله یا به شکل مرفوع و مصنع، یعنی سند داره، سند کامل داره این یه بخشی هست، حدیث هست در مورده دو حدیث مغبوف حدیث مغبوف، حدیث موجود یعنی چی؟ یعنی آراع سحان، سحانی. با این تصور با این تصور که صحاقی اگر یه حرفی نزنه یا اگر یک فعلی انجام میده این داره سنت بیغمبر یا سخن بیغمبر رو عدب می کنه عدب شخص کنه نمیخواد شخصی, بگه. شخصی بگه. من اینجا الان یه مثال برای شما میزنم یه <تصفح> بابی هست. باب و صلات نافله تف سفر به نهار و لیل و صلات علط با. خب حدسنی یحیان مالک الناف عن عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر یه صحابی انه لم يكن يصلي مع الصلوات الفريضه في السفر شيئا قبلها ولا بعدها الا من جوف الليل فانه قال يصلي على الاذ وعلى راحلته حيث توجهت هذا حديث عبد الله بن عمر در سفر قام مگر مرمه‌ها روشن یعنی عبدالله نومر نافده شب رو ولی تو سفر رو ولی دیگه نافده‌ی زو؟ نمی‌خونده نافده‌ هست؟ نمی‌خوند خب؟ بعدش یک حدیثی تو دفع می‌دوشته که متناقض با حدیث باراست متناقضه با حدیث باراست ولی حق رو سبت کرده باید دو گشنگوهای این کام بود و هندسنی محمد و اروت ابن سوهی و عبا بکر ابن عبدالرحمن کانو یا تمفلون فی نگرد کانو فی یعنی سفر قال یهیاب و سویده مالک علم نافلت فی السفر قانه لا بحثا بذاریم و نهاد وقت بعض عهده لئیم کانه یفع خود مالک سوال میکنند که ما در سفر نافلیم بخونیم یا نخونیم لا بحثا بذاریم اچه بعض عهده کار کانه مهد دسانی ان مالک آده بلفنی ان نافه ان عبدالله این اومد کان یر ابن نمو الله این عبدالله یتنف فلوف سفر فلا یونی که رو ببینید همین آقای عبدالله اومد بالا بالا بالا سیره خودشو که نرم کرده میگه ایشون غیر از نصحایشش دیگه با فریزه نافله نمی‌خونده ولی بچه‌ی خودش نافله خونده ایرادی به هیچ نکرده ده این یک فقیه مدمی‌ها برپایی نعدادی گرایی عمل صحابه و تابعین رو هم ثبت کرده در کنار روایاتی که از پیکمبر در مسیح‌های از احمقا آموده اما ما مزرحن حمدی که میرسیم یعنی در در مسند احمد ابن همبر دوستان احمد ابن نویر اولا احمد ابن همبر من اینا رو تو تاریخ حدیثم براتون نوشتم و گفتم حالا چون کشمی نیا تکرار میکنم مسند احمد ابن به یک معنا حوصله فقه هندگی بیانم احمد نمبر پیسری دارد به نام عبدالله بیگه احتفظ به ها زن و مسند این مسند را نگه‌داریش بکن فا اِنهو سایکون و امام این کار یک امام کار یک پیشبار فکری رو نگاهش بر اساس بولی که از ایشون رسیده اگر اول روزی باشه نگاهش به مسندش اینکه این مسند یک امامه ولی زا باید حفظ بشه ولی زا این کتاب که بزرگ تنی کتاب حدیثیه وقتاً لازم صحیح که که که که میشه شده حفظ میشه دیگه در سالی احمامه عملیات ها این کتاب باید این کتاب کتاب رو ولی حفظ نشه احتفظ به ها از المسند فا این او سرکون رو برناسه ایمانی در دوره مسندی اسمی آرائه صحابه و صحابیان از کتاب‌های های حدیثی جمع شد این فرد حدیث در مسندها با فرد حدیث در مصنف مصنفه ها، کتاب مبتع از اون مصنفاته در حتی در منطبعی مثل مدینه، مدینه دیگه حدیث دیگه آراء صحابیان ها بعد هم که در آراء صحابی ها, صحابی ها, ها یه وجود داره ممکنه خلاف صحبت پیغمبر باشه یه بیشتر که اجتبادات صحابی ها. باید سنی‌ها به آراء صحابی بگن حدیث چی؟ موقوف، دیگه اصطراح بده دید تو علم‌الحدیثشون. نمی‌گن فتفای صحابی، می‌گن حدیث موقوف. در کتاب‌های دوست مبتعی مایه، با مصنفات اولیه، آراء صحابی رو به نام حدیث موقوف می‌نویشن. که نونش نونه روشنش مبتعیه که تا زمان ما رسیده. عنوان یک عالم علیثمالک عدس کهست چون متعلق به حوزه م است حوزه مبیله فرشون ف علی. همین نگاه ح که در ق سوم تیت میشه به صرف احادیث نقد در نسبتات یا آارسهام و تاین رو جمع میدارند فقط، متمرکز می‌شن با عوادیس نبدی، حدیث پیغمبر این فرق کتاب‌های حدیثی نسل بعد با کتاب‌های حدیثی نسل قبل. برای همین عرض می‌کنم که درجه حدیثی را پریز‌تر میشه چون متمرکز میشه اولم رو روایات پیغمبر ثانی هم روایات مسیمر پیغمبر یعنی حتی تر امکان روایات مرسل و مرفوع رو هم باز جنج میکنن حدیث باید سند داشته باشه تا خود رسول اما مذهب حنفی و مذهب شافعی بگوید مذهب حنفی کلن یک مذهب عراقیه با این ویژگیل هایی که اینجا نوشتن فقه مبتنی بر ری و بیاص مذهب یک مذهب عراقی یعنی تبلور فقه حاکم در عراق یا اصلا بر ری و بیاص بوده البته شاگردان ابو حنیفه که فقه علایخه رو مدون کردن مثل مثلا قاضی ابو یوسف که بزرگترین شاگرد ابو حنیفه بوده اینا سعی کردن که ثابت بکنن که فقه بر سنة تکیه داره خب این یه مقدارش هم بدیگیه مگر میشه یک کسی مسلمان باشه اصلا و فقهش و مذهب فقهش بلاختی روی شیعی یه رابطه بر سنة بیغمت پیدا نفید بلاختی مسلمان بلا اون باشه بلا و شافعی باشه یک تکیه این تقهش سنت داره ولی خب این تکیهش چقدر تکیه زیادیه چقدر تکیه کمیه؟ ما اگر که این دو مذهب رو باهم محاسه کنیم، شافعی سنتگیراته است با اول چطور ما این دوتا رو هم مقایسه میکنیم میگیم که همولی حدیث گراتر هامالکی دلیلش را میمیدونیم که در زمان مالک کتاب موتق علا در احادیث نبدی بر حدیث موقوف و متقیه و در فخر اولی دیگه حدیث خیلی جایگاهی نداره بر میدونیم یعنی چیزی نیست که ما صاحب رواه به اصطلاح اونت قایسه بکنید ببینید شافعی از نظر خیلی‌ها پدر علم حدیث و فمصطلح حدیث در زمان شافعی ایشون میگه که حدیث خبر متواتر خبر واحد خبر واحد که به این قرآن اعتبار داره ما میتونیم بر خبرواه فتوا بدیم میگن یعنی اولین کسی که در ارزش خبرواه و ارزش خبرواه برای فتوه دیگه بحث کرده شافیه بعد کتاب دارن به نام اختلاف حدیث کتاب داره به نام که مهمترین کتاب فقیه شون کتاب الام وقت بعدها یعنی دو قرن بعد یه آدمی به نام آمده یکی کتاب نوشته به نام از سنن. مثلا از سنن سغرا، از سنن رو اوزد، میگن جمله‌ی که شافعی بر سر همه مسلمانان منت دارد این به همه که به ای حقی بر سر شافعی منت دارن حالا تفسیر اینجور به چیگه؟ خب شافعی یه دانشمندیه که موقعیت غیل رو میرونه چقدره موقعیت قیاس رو میرونه چقدره موقعیت سنت رو میرونه چقدره همین وضع همین نا میگرسه شده درسته؟ با یک مذهب معتدلی رو تأسیس کرده به نام مذهب شافعی, شافعی. این مذهب شافعی نه یک مذهب رعی، گرایانه افراطیه در حد مثلا مذهب حنفی نه یک مذهب خشک حدیسیه در حد مذهب حنفیه یک اقتداریه بین رعی و خدمتون سنت و وزن سنت رو هم خیلی خوبی تبهیم کرده در جنابای خودش از این نظر مشکور شده تو سنیا <تصفيق> که شافعی برسر مسلمانان مندن بلکه یک مذهب معتاده دادهی رو با ترتیبی از عقل و اجتهاد رو سنت پیغمبر اراده داره پس،, پس شافعی برسر مسلمانان میتونه مندن الا وی شافعی سر به که این برعکس اگر قرار به منت باشه به حقیه که باید سر شافعی منت حالا میدونید وجه به نت بی حقیقی بر سر شافعی چیه؟ بعدی این بچه رو درک کنید باید سننهای به ای رو رو بلاید در سننهایی بیهره که حالا دوست داشتید فردا پس حرف من امتحان کنید تو همین کتاب خانه شما سننهایی بیهره ایتحالایی فوجود داره مثلا به از سنن سهرا. یا از سنن رو گوست خب مراجعه تقویی. خودتون رو با این مطلب مواجه می‌بینی قارش رافعی قارش رافعی یه فتوه ای می... از رافعی ذکر شده بعد میگه که ما یدالله الا حاز الفتوا، آنچه که من این فتوا دلال ندیم کنه یه حدیث، دو حدیث، سه حدیث، چهار حدیث ذکر شده یعنی مستندات فقهی فتاوای شافعی از روی دقت کنید جایگاه حدیث در فقه شافعی جایگاه حدیث در فقه شافعی چه کسی جایگاه حدیث در فقه شافعی رو نشون میده؟ به بیحقی. پس به حقیث تر شافعی که یه فتوایی ازشون نرکل بکنه درها دیگه عبارت آه. آدمی هم اگر این مسائل رو ندونه فکر بکنه مثلا شافعی از خودشی یه چیزی گفته یک روی چیزی گفته اما به این حقی به معانشون میده که این فتوایی که یه خطه، دو خطه، این از چه روایاتی برخواسته یعنی اون زمانی که شافعی این فتوا رو چه روایاتی تو زهنش وجود داشته <تصفيق> که استنباطی از اون روایت این فتوا رو داده این اون جمله‌ای که معروف شده که مثلا شافعی برگردن مسلمانان حق داره الا بی که بی برگردن او حق داره جان و آقای بی حقی <تصفيق> ظاهراً متوفای سی ست نه نه اجازه بیدیم چار ست ولی قرد پنجومه به حقی از علمای قرد پنجومه الان دقیقاً یادم بود الاته سال وفات شد تو کتاب تاریخ حدیث نوشتم و این مسائل را هم اونجا به تفصیل آوردن از آن چی که گفتیم به طور خلاصه چنین, چنین نتیجه گرفته می که در بعضی از مذاهب اهل سنت با درجات درجات غیض یا رقیق فقه ماهیت ربایی دارد مثلا در مذهب همبلی، فقه فقه مذهب اولیه‌ای عملی منظورم تحولات بعدیش نیست مثلا در زمان احمد بن در زمان احمد بن فقه همولی ماهیت حدیثی داشته ماهیت حدیثی داشته من حالا یک گزارشی برای شما بگم احمد بن یه پسری داره عبد الله. این عبدالله همونه که مصند احمد بن رو جعبا کرد سر و سامند. عبدالله میگه که من یه باری سوالی از بابا کردم گفتم که در یک شهری دوتا عالم زندگیم. یکی عالمی که برمبنای رعی و قیاس فقط بارونده دارم از اخواه عبو هلی. یکی برمانای رای بریاست پر بوده یکی آلنج که حدیث ضعیف در اختیار داره یعنی میتونه با حدیث ضعیف جواب سؤال در بوده یک تازه واردی وارد این شهر روشه یک مسئله شهری براش اتفاق بکته به کدا می کنیم دو آلنج مراجعه خب جواب احمده النمبری چیه؟ که یعنی احمده النمبر حدیث ضعیف را ترجیح میده بر و بیاس. بیاس. تا اینجا این آدم فقه فقه که در پاس و حسر خودش که میگه اگر یه تازه در یک شب وارد شد دو تا عالم هست یکی برمبنای رعی خیاس فتوا میده یکی مبنای حدیث ولی حدیثش حدیث ضعیفه خب اگر حدیث حدیث صحیف باشه که بگه نورم الانوره بگه ولی حتی ایشون حدیث ضعیف را بر رعی خیاس فتوا. پس فقه حمد و فقه مالکی این فقه های با گرایش با شدت و ضعف اما های حنفی و شافعی فقه های استنباطی هست با شدت و ضعف نتیجه که میخوام بگیرم در اهل سنت دو تا مسحل فقهیشون حدیث این فقه. یا به عبارتی فقر ماضیتی جز حدیث نداشته وگه مثلا حدیث در تلقی مالک شامل حدیث مغروف هم میشده حدیث در تلقی احمده مهموندی که شامل حدیث مغروف نمیشده از اون طرف در دو مذهب فقری هنفی و شافعی حدیث از منابع نه این از منابع باز هم با شدت و زرد خب امیدوارم که توانسته باشم که جایگاه حدیث در فقه یا مذاهب فقهی عربعه اهل سنت رو هم براتون تشریح کرده باشم حالا من دیگه نمیدونم که چقدر ما عرض کنم خدمتون وقت دارین ولی من یه مطلبی عرض بکنم برای شما یه مطلب یا بروان تکمله و تتملی این بحث عرض بکنم خدمت شما من یک حدیثی از سنن دارومی براتون بکنم این حدیث رو از سنن دارومی نقل کنم و به نظرم بعد از نقل این حدیث دیگه وقتی کلاس ما امروز به پایان برسه در سران دارمی آمده که خلیفه دوم بن خطاب شرعه قاضی رو فرستاد برای کوفه که به قضاوت و یک دستورالعملی هم بهشون داد که بر اساس این دستورالعمل کار ده. خب در این دستور عمل هم به این قاضی رحیده میده که اگر قضاوتی برای تو آوردن اگر یک مشکلی دعوای مشکلی پیش آمد و آمدن پیش تو و از تو قضاوت خواستن اول در کتاب خدا نبا. اگر جواب مسئله و اون دعوا را در کتاب خدا یافتی که بر اساس کتاب خدا او کنید خب که هیچ چیز جای کتاب خدا رو نمیدیده حتی سنت پیامبر اگر جرام مسئله رو در کتاب خدا نیافید سنت پیامبر نظر یفتگنید سنت پیامبر نظر یفتگنید و اگر توانستی جواب مسئله رو یا داوری در یک دعوا را بر اساس سنت پیانبر بدهی خدا بر اساس سنت پیانبر خود کن و فیصله بده اون اما اگر که در سنت پیانبرم جواب پیدا نه. اینجا دو راه نیزد و پیش پایه. یک با رعی خود فتوهایی ببینی با رعی خود قضاوتی بکن دو مشکل را منعکس بکن به ندید که ما جواب براتو بخصیم ما یه جواب براتو بخصیم اگه خواسته ازیاد بکنیم با رعی خود فتوهایی بکنیم مشکل را منعکس بکن به ندید. ما رو ر بلد ملذا از زمان خلیفه دوم استفاده از رعی جایز میشه در طول کتاب و سنت و هرچه که زمان جلو لجل بی جایگاه رعی و قیاس بنوان یکی از ابزار های فقهی مشخص تر و جایگاهش نه اول میشه. این،, این اندازه که من الان برای شما گفتم گفتم شما اگر به حال اصول فقه عهد سنت مراجعه کنید مباحث فقهی اهل سنت از قیاس به انبان یکی از ابزارهای استنباط استفاده می‌کنند در قدی برای شما خوندم که مکمله درس هم باشه از قیاز عنوان ابزار استنباط استنبال استفاده می‌کنند حالا بعضی از مزارع بیشتر، بعضی از مزارع کمتر. تا جایی که گفته شده حتی در مذهب مالکی و مذهب برستود هم‌بنی هم در مقام اضطرار از راجع و بیاز استفاده خواهد شد در جاهایی که حدیثی ندارند یا آیتی ندارند یا حدیثی ندارند استفاده میکنند از را و بیاز. این در شرایطی بود که زمانی که امام باقر و امام صادق آمدند تاکید کردند که هر چیزی بلا در حد اصول اصول یعنی کلیات نه در حد جازیات هر مسئله هر بحث که پیشتی حتما ای در کتاب سلطن بلا در حد اصول و و سلام با علیه سیبنا چون الان دیگه ازانه ما دیگه سر ازان درس نبودم